لا هدرك لم تانس بدنيانا ولم تسر خلف طيف السيف خدلانا ولم تعفر جبين العز مبتدلا فاستنطر wasallam. اصغاءا بسم الله الرحمن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به برنامه امروزی ما خوش آمدید خداوند زلجلال را سپاس گذاریم که به ما فرصت داد تا یک بار دیگر از طریق رادیوی صدای جنداله به خدمت دوستان عزیز قرار بگیریم امروز جمعه تاریخ پنج جمادستانی مطابقی 27 اپریل رادیوی صدای جنداله حرکت اسلامی اوزبیکستان نشرات فارسی خود را در برنامه از جمعه تا جمعه ایدامه می خدا کند که همیشه تحت رحمت الهی قرار داشته باشید و همچنان امیدوارم که داشته های برنامه امروزی مورد پسند شما قرار بگیرد سخن به درازانه میکشانه میراییم به طرف داشته های برنامه امروزی در برنامه امروزی سلسله اندرس ها صدای جندالله با برادران مجاهد ادامه دروسی مفتی ابوذر زرعظام در بخش نظام اسلام موضوع ما نتایج تأسیس جامعه اسلامی بر اساس عقیده اسلام احتمال تغییر تحولات یک هفته با جندلابا شد.بعد یهتز فی عقفيه مؤتلقاً يميد بين بنات الحسن نشواناً هذا الذي كان يرجوه فنا له الله حکمت نیست. متکلم را تا کسی عیب نگیرد، سخنش صلاح نپذیرد. هر که علم خواند و عمل نکرد، بدان ماند که گا و راند و تخم نیفشاند. هر کی را رنج بدل رساندی، اگر در عقیب آن صد راحت برسانی، از پاداشی آن یک رنجو شمین مباش که پیکان از جراحت بدر آید و آزار در دل بماند. هر که بادشمنان صلح میکند، سرازار دوستان دارد، هرچی چی دل آید در دیده نکونم نماید؟ محال از که هنرمندان بمیرند و به هنران جای ایشان بگیرند. لقمان را گفتند. ادب از کی آموختی؟ گفت از به عدبان. هرچی از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فیلیان پرهیز کردم. لطف کن که بیگانه شود حلقه به گوش. قدر عافیت کسی داند که به مصیبت گرفتار آید. خوب چه نوندگانی عزیز؟ این بود اندرس های امروزی خدا کند که بهره نیک برده باشید سلسله مساحبه خوانندگان عزیز رادیوی صدای جندالله به بخش مصاحبه های رادیوی صدای جندالله خوش آمدید در جریان این هفته ما یک از مراکز مجاهدین را زیارت نمودیم البته در اینجا جوانانی بسیار با شجاعت و مسئولیت پذیر به نظر می‌رسند ایشان به خاطر مبارزه علیه کفار و مرتدین مدارس و مکاتب را ترک گفته به دیار هجرت آمدند اولا قدوم آوری ایشان را در این دیاری هجرت خوش آمدید گفته و از الله تعالی برایشان ایشان اجری به شماری را خواهانیم شما را زیاد منتظر نمی گذاریم به طرف برادران عزیز برادر عزیز می توانید که خود را بشنویندگان معرفی کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم اسم بنده زیندین از ولایت تخار و لسالی برادر عزیز علت آمدن شما به صفوف مجاهدین چی است؟ برادر محترم علت آمدن ما در این سرزمین در راه الله تبارک و تعالی همین است که خاطر نابد ساختن شرک و نابد ساختن کفار و نابد ساختن یهود نصارا که در کشورهای اسلامی خصوصان در افغانستان تجاوز نمودن و غلبه نمودن تمام مسلمانهای افغانستان در تحت ظلم کفار قرار دارد امروز که پیغمبر ما را پیغمبر خاتم النبیین توهین می شود قران کی الله تبارک و تعالی برای مسلمانها برای پیغمبر آخر زمان نازل کرده است او را توهین میکنند ورا در آتش میاندازد، آن قرآن مبارک را حتی در لیترین میاندازد. ما با خاطر که این کفار را نابود، سختان این کفار، تجاوز این کفار را ما علیه این کفار مقابله میکنیم. ما نابود کردن کفر و شرک و فتنه آن کفر که فتنه میباشد، یک فساد میباشد، به خاطر ازی ما آمادم دریم. الله برادر عزیز می توانید که خود را باش نویندگانی راژیو جند الله معرفی کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم نامی من محمد عمر از ولایت تخار و لسوال رستاق باشنده قریه چپ درن. برادر عزیز علت آمدن شما به صفوف مجاهدین چی است؟ علت آمدن من در این صفی مجاهدین on da Allah e tabaaraka wa ta'ala azan arsh buzurg be wasite amin بسی نبی مبارک صلی الله علیه و سلام علته ان گیزئی انظا بیان کرد که فضل الله المجاهدین علی القاعدین درجه زیرا که این مجاهدین بخاطر محو کردن کفر و شرک می جنگد اینوها را الله تبارک و تعالی بر قاعدین اجر عظیم را برایشان عطا نموده است الله تبارک و الحمد الحمدلله در قلب به من غیرت و جذبه ای ایمانی را انداخ ما در صفی مجاهدین حرکت اسلامی ازبکستان جندلال آماده شدم برادر عزیز به مجاهدین چی توصیه دارین؟ توصیف من بر مجاهدین این است ای مجاهدین غیور و باشه آمد شما از این توطیه دشمن بالکل خوف نداشته باشید اگرچه شما را به نام دحشتگر و یا بنام انتحاری مسموم میکند شما جهاد خود را ادامه دهید از در این کار نگیرید والله پدرم نمیماند مادر من نمیماند برادر و خواهر و قوم و قبیله همه را ترک قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا طاعت للمخلوق في معصيه الخالق ای بخاطر خاطر اطاعت مادر پدر و birodar o qaum az itaaati allah jalla jalaluhu begonashuda id na khair birader balki yak sifat-e mujahideen in la yaqafuna khafuna lawmat alaim az molaamati molaamat kunundagan nemitarsad zira allah tabara wa ta'ala farmuda a'udhu billahi minash shaitani rajeem jaa al haqq wa zahaqa al baatil innal baatila kaana zahuqa برادر عزیز با کفار و مرتدینشان چی پیان دارید؟ اعلان ما برای کفار اینکه ای یهود و نصارا و مرتدین شما در تانگ و تیاری خود فخر نکنید امروز در بین مسلمانان و مجاهدین چنین جوان دین قربانی هست که خود را به دین اسلام قربان می کند نه اینکه از تیاری شما بترسد هیچ نمی ترسد الحمدلله صداها تن استشهادی در مقابل شما و قربانی کننده برای الله جل جلاله بخاطر اعلی کلمه الله بخاطر ریزای الله تبارک و تعالی و هزارها مجاهدین جنگی موجود است با این آواز صدا کند سبيلنا سبيلنا الجهاد الجهاد طريقنا طريقنا الجهاد الجهاد آخرين أمر يا شريعات يا شهادات مميخهم كي حاكمية قرآن وحاكمية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نا حاكمية ختجر كذاي بوش أوباما إملعون دشمانان إسلام ودشمانان قرآن ونا حاكمية ديمقراسي ونا حاكمية نيهود نصارى، لأنك بعقم بني ما، بتشكان كافر شكان بود، هم تنان ما هم إن شاء الله بتشكان مرتضشكان يهود شكان نصارى شكان هزيم إن شاء الله وما علينا إلا البلاغ السلام عليكم ورحمة الله. من اهلا اهلا اهلا اهلا قافلتي اهلا اهلا, اهلاً, اهلاً, اهلاً, اهلاً عزیز صدای جند الله این بود مصاحبه ای جند الله با برادران مجاهد ان شاء الله در برنامه های بعدی نیز مصاحبه های دیگر را به خدمت شما تقدیم خواهیم کرد با ما باشید و سلام عزمك قديه قورته والسطر ابي يا او نوما ما فاز كسل يوما ودعوا نقدا او لوما فالله حمداك يا عزيز درين بخش از پروگرام توجه شما را به شنیدن سلسله دروسی مفتی ابوذر عزام جلب می داریم وقتی که شما می دموکراسی را بوگین که چرا شما نظام اسلامی را نافذ نمی کنین چی میگن که قوت نداریم کسانی که کمی کمی مخلص هستند مخلص نه همدرد هستند میگه شما از ما هستی ما شما ما هستی خودش خودشه را مسلمان فکر میکنه و بعد وقت او از ما هم بازش بعضیشو فکر میکنه که مسلمان است باید ما کمی کمی گپ شپ کنه مذاکرات کنه مي... همین جانور قتی کمی کم مذاکرات بکنه بعد مذاکرات چی میگه ما قوت نداریم که نظام اسلامی را کنیم تطبیق کنیم از شما سوال است امروز طاقت و قوته که در پاکستان و در افغانستان برای تطبیق نظام دموکراسی رفته است، همه قوت را اگر ما برای نظام اسلامی انطباق می‌کردیم نمیشد؟ میشد کو؟ بعد یه دیگر سوال. تو میگی که از آمریکا ما مجبور هستیم. اگر از آمریکا مجبور باشی همه مردم که شریعت را می‌خوان، او را ضد آمریکا بجنگان. که ما دموکراسی را نمی‌خواهیم، من همه مردم ما هستند ضد تو می‌جنگم. وام نمی کنه مجبور هستم میگه در بنده خانه میق عذاب زیاد میکنن که امریکیا میگن که بس بس نزن دیگر میگن نا می میره همه مخلص زیاد هستن با کفر نامش مسلمان است نامش عبد و فلان عبد و فلان میباشد لیکن ظلمش را می ببینند از امریکیا تر شده گیر چه ظلم جسمانی و چه ظلم جنسی و چه ظلم اخلاقی همه کار را میکنن فرواه نمیکن این چیز را و چطور مجبور سعی شد تو در میدان مجبور هستی در بند خانه چطور مجبور است کسی نمی بیند تو را اونجا یعنی امی مردم که نام حقوق بشر را میگیرند کلان کلان شعار را میگیرند و نام خوشنما و خوشرو ما و شما را گمره کردنیان، این دشمن اسلام هستن کسی باشد الله حفاظت کند اگر پدر ما برادر ما رشتداره ما شما در نظام باشند. Dushmanoa ei muostan, dushmanoa islamasta. Dar nizam shart as ke potsha ei muslimona, chi boshad, hindu boshad. Dar nizam ei islami, shart as ke potsha ei nasroni nasrani boshad. Ira fahmidan bakaras, fikrkaidan mi bush khafaasteen, u Mu muslimona si همه خدا خداست اما زنده باداست. شرط است، شرط. یکو عقلی چیز است. چرا نباشد. هم عقلی را تسلیم میکند که باید پرسش مسلمانه چی باشد؟ مسلمان باشد. او مسلمان نیه باشه. او غم مسلمان کجا میخوره؟ سعی شد. لیکن در نظام دموکراسی شرط نیست. الله تعالی میفرماید که ولی یا جعل الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلَ. هرگز الله تعالی کافر را علیه مسلمان ها راه نمیتا بالای مسلمان ها غلبه نمیتا لیکن در نظام دیمکراسی چی است؟ باشد او کافر است، نصرانی است، یهودی است، قادیانی هست،, هست، شیا چی بالا هست مشکل نیست اگر مردم او را خوش دارن، مردم با او راضی هستن بس او صدر هست، او رئیس دولت است. یعنی بالکل مخالفت سریح میکنه قران میگه که باید پادشاه مسلمان مسلمان باشد سعی شد امیر مسلمان چی باشد مسلمان باشد لیکن دیمکریسی میگه که نه ضرور نیست کسی باشد. چه فرق است امیر در نظام دموکراسی مرد بودن هم ضرور نیست او نوای شریف است شاه باش شریف است بنظر شریف است پرویز شریف هیچ فرق نیست کسی باشه شریف باشد بس است پاکستان شریف افغانستان شریف شد هم شریف شریف شدگی همه شریف شدند او کیش باشه فرق نیست Hala, Allah taala me farmayat ke lir rijal alayhi an Mardo, mardao bolay zanha daraja daran martaba daran bolay as zanha ar rijal qawamun alal nisa mardhao ba zanha peshwa lekin da de democracy chiza nest kese ho chat farq nest rishtdar zan ast ya berisht zan ast ik farq nest mega insaan ast ku rishtdar zan و نظر خنزیر بیرش زن بود یه فرق نیست و اون دایوسس یم دایوسس دایوس چه فرقی چه است. او اون به اسلام خائن است یم به اسلام خائن است و به ملتش غدار است و اون به ملتش غدار است اس. فرق نداره یعنی عقیده ما شما است کی یک نظام کفر است متصادم به اسلام است باز به با نماینده پارلمان که این مردم را شورا میگن شورا حالانکہ شورا اصطلاح اسلامی است لیکن مسلمانها را برای گمراه کردن مسلمانها باید چند تا اصطلاحات اسلامی هم باشد میگه پارلمان شورا است شورا عالی است و شورا است و شورا است شورا سلیمان خیلی است و شورا و جرگه استر است استر جرگه دیگه لویا جرگه هر قسم بلاو جوڑ دادن لیکن نو حکم کم ای کم ای مشابه با این ها هست لیکن یک چیز را بفهمیم که در اسلام شورا چی را میگه؟ اهل حل و عقد مردم که اهل استن مردم که به یک کار لایق استن قابل استن او در شورا میشینن مثلا کسی که موتر را جول کردن ندانه شما د پیش موتر میبرین؟ د پیش کچل پروش موتر را میبرین؟ که تو هم انسان هستی ایران اصلاح نمیبرین کو در پیش مستری مطر رفته شما را نمیگوین که به ما یک پنج کیلو و آلو بیتی نمیگوین کتور لیکن این مردم همی کارها را به امت کرده استن دمی فریب را به داده استن امت هم خرسان است که ما بسیار خوب نظام رفته است کسانی که اونجا میشینند یک فیلم است که شما ببینی، انشاءالله حیران میشین وزیر داخله پاکستان نام شیطان ملک است شیطان ملک قل هو الله و حضر خواندن نمی تواند کسی که به دنیا درس اخلاص می تو صورت الاخلاص را نمی فهمد را یاد نداره او در باره اسلام در باره شریعت در باره مجاهد در باره تالیبان گت میزند و خدا غرق کند را همیتون مردم در پارلمان نه وزیر داخلی پاکستان که مردم را دارو اسلام میگه دولت اسلامی میگه وزیر داخلیش صورت اخلاص را نداره. وزیر فرهنگ پاکستان که نام جاوید اشرف قاضی علی لعنت نت الله بود. نامش را بین جاوید اشرف قاضی همه شریف در پاکستان جمع شدن و اشرف نه، اشرف نه اشرف است. اشرفم بالا شده گی است. قاضی هم است. نامش است. جاوید هم است. وزیر فرهنگ پاکستان در زمان پرواز, پرواز شریف بود. نوا شریف رمیش نسی نه؟ پرواز شریف را میشناسه پرواز کرده لندن رفتگی است رو خدا را غرق کنه کجای باشه همون پرواز شریف این را چی کردگی است وزیر فرهنگ و تعلیم جور کردگی است او در مصاحبه تلویزیونی میگه که قرآن ما 40 پاره است باز کسی او را گفت که سی پاره است چشمشی اینطوری میکنه نه 40 پاره است ما خواندگی ام ای شیطان ملکم میتر که سه بار سوره اخلاص را, را تکرار کرد نتوانست قل الله احد الله لم یلد ولم یولد همین تر ویدیو شاید در پیش من گپای هوایی نمیزنم ان در الله دروان اسلام من حواله است رنگین و یک یهودی بچاست دیگر زنه ها و چیز و بیزوا و شادی و جمع شدند در پارلمان میشینن که حکم قانون برای ملت افغان جرمی یه قانون جور میکنه احمق و خودش ایزور بوجیدن را یاد نداره هیچ چیز را نمیفهمد غیرت کنین برادرها غیرت که مردم که امروز به ما و شما حاکم شدن باید پکشیم ما را فقط پراندن علاجش هست گپ شب نیست گپ شب وقتش تیر شده گیست باز همی فریب که هست که پارلمان را شورا میگن فهمیدین با کرسی خوشنما و خوشرو به پارلمان خوشنما و خوشرو باید جوانای مسلمان جوانای مجاهدین گمراه نشوند انشاءالله نمیشونم را همین برامادن که همین فریب را که امروز مردم کافره یهود و نصاره به ما شما داده استن که پرلیمانی شوره است اللہ تعالی میفرماید که و امرهم شورا بینهم ما دلیل ما دارد از قرآن دلیل آوردن قرآن را نعوذ بالله بازی چه جور کردنی بدبختا و امرهم شورا بینهم این دلیل پارلمان شد کلان در لوحان و اشتاگیت و هم شورا بیناهم در اسلام در شورا کی میشینه؟ در شورا در شریعت مولی ساب میشیند در تجارت تاجر ساب میشیند و هم باید علم شرعی را داشته باشه همیتر کچالو نباشه نه صد را میفهمند نه ربا را میفهمند هیچیز را کاروبار اسلامی را نفهم او را هم که پیسه از زیاد است نه باید علم تجارت رفت تاجر داشته باشه تاجر علم تجارت رفت میفهمد سیاسی یک متخصص میشیند. استاز پوانتون اسلامی را که مکمل کرده سیاست اسلامی را میفهمد سیاست اسلامی چی است؟ اشید دا کف رو هما با کافر از سخت می باشید با خودشون می با خود تو می این سیاست اسلامی است. بالای کافر میشینی سرش رو می سیاست اسلامی است گر تسلیم شد سرش رو پاسکود جزیش مید Jizyaa shmii geri. Ger boray jizyaa tayar nämi shab kallas bi ger, bayak gumshay abad. Khudorai taat nämi ne? Kese khub ba Khuda سیاسی متخصص میشیند، استاز انجنیر میشیند، انجنیر که میفهمد که سرکارا چطور جور کردن بکار است، پلها را چطور تیر کردن بکار است، دیم آب را چطور تیر کردن بکار است، شرعی علم داشته باشد، این چیزار هم چی فهمش په چیش داشته باشه خبرداری. همیتر مردم در شورای اسلامی میشیند. همی شورا را امیر متعین میکند. امیر از برادرای مجاهدشا. Az bradoray muslim, az ummat, ksera mii binat ki o, mtehassis admas, zahidu, mteqiu, parhezgar adma, xubaz, ba ummatu ba millet muslima, xianat, nami kuna o ra faryad mi kuna, a jangal o kuna, biab, biab, biab, biab. Gariib, اهمیت ندادن، اعزاز ندادن، لیکن امیر و او را فریاد میکنه بیا بیا بیا انجا. وزیر صحت شد، وزیر مالیات شد، وزیر تجارت شد، وزیر معدنیات شد، وزیر علم و فرهنگ شد باید او لایق باشد، کچالو نباشه؟ هیچ چیز را او وزیر داخلیش میشود، وزیر خارجش یک دختر زناکار و بدکار خدا او را غرق کنه کجای باشد او میشود، چی او ملت اسلام است، Islam rägharka dan, fahd lauhas, wa amruhum shurab inhom. If haribas. Dar mahkamaa ikafira miri, dar pushte kauzise, ami kauzii kachalu keshistegias. Libas esioho, tap tap tap yhäs kis Order order mega ninja. hukum hukum hukum garda, se var mege, vast mojrim hukum mekana. Da pushte naviista نو اشت در پار درس محكمه پاکستان و حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل هي ايته قران ردين اي قانون انگليز ر빈 و اي در مسخرة بازی از شیطان تر الله تعالی در القرآن گفتگی است که يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم اي بني إسرائيل نعمت هاي من شما دادم اونو وَأَنِّي فضلتكم على العالمين مَنْ شُمَارَ بَعَالَمِينَ فَزِيلَتْ دَادَمْ همين آيات را دا إسرائيل دا كلان كلان لوحه نوشته مانده گئن دا إسرائيل يهودية آيات قرآن را در لوحه دا كلان كلان شهرها نوشته مانده گئن پایانش مينوثن اي ترجمه اسی قرآن مسلمانه اي طور ميگه که ما افضل استم ایرانش هندوه خجت هندوه چی میگن که گاور عبادت کردن از قرآن ثابت شده است زیرا که اول سوره مسلمان ها که در قرآن است سوره البقره چی میکنه در دنیا فریبکاره در این دنیا مکر در این دنیا خدا سازش ما شما غریب ماندیم غریب مانش بیگانه است اجنبی ماندیم در دنیا کسی گپ ما را نمی فهمد الَّذین الذين يعصيهم him ممن يطيعون كسانكه باو نافرمانی میکنن او زیاد میباشن از کسانی که گپاش را میگیرن شما کم هستید او بدبختا که هستم بیخی میلیون میلیون ها میشینند جلسات لیکن د پیش شما اهمیته ندارن اعتبار ندارن چرا که زندگی ما قیمتی است ما قیمتی است زندگی زندگیش هم برباد است آخرتش هم الله برباد است لیکن ما الحمدلله کامیاب استیم بده الاسلام غریب بس همی آخری اسلام بیگانا شروع شدگی است اجنبی شروع شدگی است کسی او را نمی فهمید غریب مانشه نیست که فیسا نداشت نا. کسی او را نمی فهمید و سیعود و کما هست ان غریب. Vakteen kehunneuvuuden aikana on aina olemassa eri kulttuurit ja ihmiset. Tämä on yksi asia, on yleinen. Tämä on yksi asia, joka on yleinen. Tämä از سلسله دروس مفتی ابو موضوع دموکراسی به پایان رسید انشاءالله این سلسله روی موضوعات دیگر ادامه خواهد داشت فراموش نکنید نظام اسلام شنوندگان عزیز رادیوی صدای جندالله در بخش نظام اسلام خوش آمدید البته در هفته های گذشته از نظام های اسلام نظام اجتماعی اسلام را به شما معرفی نموده بودیم. در این هفته نظام دیگری از اسلام را به شما معرفی می‌نماییم. این نظام عبارت از نتایج تأسیس جامعه بر بنیادهای عقیده اسلامی. خدا کند که از این موضوع استفاده اینک نمایید. نتایج تأسیس جامعه بر بنیادهای عقیده اسلامی نتیجه اول پیوند ایمانی بین افراد جامعه اسلام تمام مؤمنین با عقیده اسلامی را برادر دینی می‌خواند اینم المؤمنون اخوه نیست که مؤمنان با هم برادرند رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند المسلم اخو المسلم مسلمان برادری مسلمان است رابطه و اخوت ایمانی با عظمت ترین پیواند بین مسلمانان به حساب می آید و موالات و دوستی نیز بر اساس همین پیواند بوجود می آید شاید مسلمان با برادر مسلمان خود پیوان های دیگری مانند برادری نسبی و و غیره داشته باشد البته این روابط نیز در اسلام مردود و ناپیسن نمی باشد ولی به با شرط این کی امر باطلی در آن راه نداشته و بر رابطه ایمان و مستلزمات آن برتری و ارجحیت داده نشود با تأکید باید گفت که رابطه ایمانی بین مسلمین به هیچ صورتی به معنای ظلم و فشار آوردن بر غیر مسلمین نمی باشد زیرا چنانچه گفتیم اسلام ویت غیر مسلمین را در جامعه اسلامی پذیرفته و به حمایت کامل از آنها عمل می کند در این صورت اگر غیر مسلمان اخوات ایمانی و اسلامی را با سایر افراد جامعه به دست آورده نمیتواند از حمایت جامعه و عدالت اسلامی و خیر جامعه محروم نمیماند. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدین ولم يخرجوكم من دیاركم انتبر روهم و تقسطو اليهم ان الله يحب المقسطین معنی نمی کند. الله شما را از آنهایی که در امر دین با شما جنگ نکرده و نکشیده شما را از خانه هایتان. از آن که نیکویی کنید با ایشان و انصاف کنید در حقیشان، بیشک الله دوست می‌دارد انصاف کنندگان را. نتیجه دوم، از بین رفتن تمام تعصبات جاهلی، مقصد از عصبیت، عبارت از همکاری و پشتیبانی کسی در حق و باطل، صرفاً به خاطر اشتراک با آنها در سلسله نسب، قبیله و خانواده می باشد. در ایام جاهلیت، افراد یک قبیله در حق و باطل بنصرت و پشتبانی از یک دیگر می پرداختند. فقط به این لحاظ که آنها منصوب به یک قبیله و نجادن. اسلام این گونه تعصبات جاهلی را مردود اعلان کرده و امر نمود تا آن را دور بیاندازن. انجوبه ریبن مطعیمین، anna Rasool Allah صلى الله عليه وسلم, "Qol, leesa minna, man dhaa ila asabiyya, minna, man qatla ala asabiyya, leesa minna, man maa' ala As Az Jubair bin Mutaim radhiAllahu anhu riwayat aski Rasool Allah صلى الله "Farmudan." Az jumla Monist, kasikki basui taasub dawat mikonat, wa az manist kasikki ba khutir taasub mi jangat, و در وصف تعصب قومی و انجادی دعوها فانها منتنه تعصب را ترک کنید زیرا که آن خیلی گندیده و بدبو است شعار جاهلیت این بود که برادرت را اگر ظالم باشد یا مظلوم پشتیبانی و نصرت کن یعنی در هر دو حالت در کنار او قرار گرفته و از او به دفاع بپرداز اسلام مفهوم این شعار را تبدیل نموده و فرمود اگر برادرت ظالم است او را از ظلم کردن بازدار و اگر مظلوم است از او حمایت کن و در کنار او قرار گرفته و در برابر ظالم قیام کن این مرد و شموردن تعصبات از سوی اسلام تنها در حدود تعصب‌های ناشی از اشتراک در قبیله و قام خلاصه نمی شود بلکه تمام عنوان تعصبات را به هر سببی که باشد درور بر می‌گیرد. مادامی که جوهر عصبیت که از نصرت و پشتبانی در عمر باطله است در آن موجود نباشد نتیجه سوم، تقوا معیار برتری بین مردم قرار می گیرد با تعصبات آثار و نتایج آن نیست نابود می گردد که از جمله آن فخر کردن با آبا و اجداد و استقانهای پوسیده پدران می باشد زیرا منصوب بودن به قبیله و خانواده معینی سبب فخر و بزرگی نیست و نه به فضیلت و بلندمرتبتی آن قبیله می توان کرد چی؟ هیچ رابطه ای بنی منصوب بودن انسان به قوم معینی و فضیلت او وجود ندارد بلکه معقول این است که فضیلت و برتری هر کسی به تناسب فضایل و خوبیهای تعیین گردد که در شخصیت خودش جا ساخته است و به اندازه اعمال نیکویی مشخص شود که به جامعه تقدیم می کند و تقوی و خشیت از الله جل جلاله هو است که تمام این فضایل را بارور می سازد از همین جاست که اسلام عزیز تقوی را اساسی برتری و فضیلت بین انسانها تعیین گرده است اما منصوب بودن به قبیله فقط برای است. مانند منصوب بودن به شهر معینی حرفه معینی خانواده و تباری و داشتن اسم خاصی که همه برای مشخص شدن مکلفیت ها می باشد شنوندگان محترم این بود معلومات مختصر در مورد نتایج تأسیس جامعه بر بنیادهای عقیده اسلامی بقیه موضوع را در برنامه های بعدی ادامه میدیم. با با جندالله باشید و السلام علیکم لا موسیقی شنواندگانی عزیز اکنون نوبت به بخش آخیر برنامه امروزی رسید البته در این بخش از دقیق یک هفته شما را با خبر پاکستان 28 جمادی الاول 20 اپریل در نتیجه سقوط یک تیاره مسافر بری در نزدیک اسلام آباد 127 کشته شدن این تیاره در روز جمعه میخواست که از کراچی به اسلام آباد سفر کند ولیکن به عبارز تکنیکی و مشکلات هوایی به هدف نرسید سقوط نمود که در نتیجه همه سرنشینانش حلاک گردید مقامات پاکستانی میگویند که از میان 127 نفر جسد یکش هم سالیم نمانده است دوی جمادیستانی مطابق 24 اپریل در شهر لاهور در نزدیک خط به اثر انفجار یک ماین سی تن کشته و بیستانی دیگر زخم برداشتن که حالت زخمیان این رویداد نازک گفته شده است چهار جمادیستانی مطابق 26 اپریل استوره محكمه پاکستان صدر اعظم این کشور را به خاطر اهانت و بی‌احتنایی آن مقصر شناخت و حکم سزای آن را صادر نکرد استوره محکمه یوسف رضا را در ماه فوریه گذشته به بی‌احتنایی متهم کرده بود چون او نخواست که دوسیه فساد اداری علیه رئیس جمهور آصف علی زرداری را دوباره بگشاید و استدلال کرده بود رئیس جمهور که اتهامات فساد اداری را رد می‌کند در برابر پیگرد قانون مسئونیت دارد محاکمه جیلانی بعد از و دیروز پایان رسید و قاضی تنها مجازات رمزی و سمبولی را اعلان کرد که او تا پایان محاکمه در تالار بماند 27 جماع دلول مطابق 19 اپریل در منطقه جندوله در وزیرستان جنوبی برادران ما در سی مکان مختلف سی ماین را جاگزین نمودند در مرحله اول یکی از موترهای کماز ایشان که حامل پترول بود در ماین اولی افتید ماین دوم بالای ششت از ماین پاکان امفجار کرد که در نتیجه همه ایشان کشته شدند و ماین سیومی بالای دو از دیگر امفجار نمود که ایشان را نیست به جهنم فرستاد. بستنوی جمادی الاول مطابق 21 اپریل. برادران ما با همکاری انصارشان در منطقه شکرای از سلاح هاوان 120 پنج مرمی فائر نمودند نظر به گفته های انصار برمی های فرشده به هدف صحیح اصابت کرد دوی جمعه دسانه مطابق 24 اپریل برادران ما در منطقه بدر با استفاده از سلاح های کلاشنکوف پی کا و راکت بالای پسته دشمن هجوم بردند که در نتیجه جنگ شدید رخ داد ولی تا کنون از تلفات دشمن معلومات دقیقی در دست نیست در همین روز یک برادر ما به نام از زندان حکومت مرتد پاکستان رها گردید افغانستان 28 جمادی الاول مطابق با 20 آوریل یک برادر مجاهد به اسم حمید الله با واسکت فدایی و سلاح کلاشنکوف در یکی از مراکز پلیس در منطقه گرمسیر ولایت هلمن هجوم نمود در مرحله اول هنگامی که عساکر پلیس مشغول صرف غذا بوده از اسلحهشان غافل بودند این برادر به ایشان تیرباران نمود بعد از این حادثه وارد مرکز شده عملیات استشادی نمود که در نتیجه 24 کشته و 11 تن زخمی برداشت بعد از وقوع این حادثه یکی از اهل ناتو میخواست تاو این صحن شهاد، الحمدلله مجاهدین توسط راکت آرپیج سقوط دادند که در نتیجه هلیکوبتری مذکور با چهار سرنوشین که اسلاکیرو آمریکایی بودند به حالاکات رسید. 29 جماع دلول مضابقه 21 اپریل ریاست عمومی افغانستان میگوید که با کشف زبط هزاران کیلوگرم مواد انفجاری در کابل از حوادث خونین در این شهر جلوگیری شده است. شفیق الله تاهیری یکتن از مسئولان اداره متباطی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان بر هی کفره گفت در پیواند این رویداد پنج تن به شمول سی فرد پاکستانی نیز دستگیر شده اند ولیکن ما این دروغویان را خوب می با تاریخی مذکور اداره فاسید آمادگی مبارزه با حوادیس طبیعی افغانستان میگوید که در نتیجه سرازر شدن سیلاب‌های های آخر در ولایت های حرات و پکتیا حدود نوتن تن کشته و شانزه تن دیگر زخمی شدند. مرتد نعیم کاکر رئیس این اداره برسانه های کوفری گفت ارزگان، غور و بادغیس از جمله ولایاتی اند که در دو روزی اخیر شاهد سیلابه های بوده و گفته این مرتد در این سیلابه ها در مجموع 500 خانواده متضرر شده و 1200 جریب زمین زراعتی تخریف گردیده است. سی جمادی الاول مطابقی 22 اپریل اعضای مشران جرگه و اولی سی افغانستان فیصله کردند که مسئولان امنیتی باید در مورد حملات مسلحانه کابل، لوگر، پکتیا و ننگرهار با آنها معلومات دهند. در جلسه عمومی مشوران جرگه در حالی که مقاومت نیروهای مرتدی افغان در برابر این حملات تداعی شد سناتوران از کوتاهی نیاتهای استبراتی در جهت جلوگیری از این حملات انتقاد کردند در این نشست فیصله شد که در جلسه روز سه شنبه مشوران جرگه غرض ارائه معلومات این حملات حاضر شوند با تاریخ مذکور در نتیجه انفجار یک بمب دستی در ولسوالی سالنگ ولایت پروان یک طفل جان باخته و دو طفل دیگر زخمی شدند قومندان امنیه ولسوالی سالنگ به رسانه های گفت این دستی که از زمانه های دیر در این محل باقی مانده بود امروز زمان منفجر گردید که اطفال هنگام بازی به با آن برخورد کردند سخانگوی واری کاپیس گفته است که یک رنجاری اردوی ملی در یک مانی کناری جاده تصادم نمود. که در آن 5 اسکاری اردوی ملی زخم برداشتند. زبیح الله مجاهد مسئولیت این فجور را با وجود گرفته میگوید که در انفجار 5 اسکاری اردوی ملی کشته شده اند. با تاریخی مذکور نیروهای ایساف از کشته شدن دو تن از سربازانشان در شرق افغانستان خبر دادند. آیساف میگوید که این سربازان زمان کشته شدن که در یک مانی جاسازی شده برابر گردیدند. سی محمد مطابقه مطابق 25 اپریل، قومندانی امنی ولایت تخار میگوید که یک فرد مجاهد همرا با مقدار مواد انفجاری بازداشت گردیده است. نظر به گفته حکومت مرتدی افغانستان، های مجاهدین در ولسوالی نجراب ولایت تگوب رو به افزایش است. با تاریخ مذکور، ناتو با پخش یک اعلامیه گفته است در یک عملیات بر رهبری نیروهای افغان در ولسوالی نادرشاه کوتی ولایت خوست، یک قومندان مجاهدین همرا با چند تن از همراهانش به شهادت رسیده‌اند. با تاریخ مذکور، آیساف میگوید یک سرباز بین‌المللی در اثر انفجار یک بمب مین جاده در جنوب افغانستان به قتل رسیده است. آیساف همچنان گفته است که یک سرباز بین‌المللی دیگر که در یک رویداد جراحت برداشته بود، دیروز در شرق افغانستان جان باخت. با تاریخ مذکور، با گفته حکومت مرتد افغانستان که هنگام شب یکی از قمندانان حربکی به نام حاجی محمد شا با پسرش توسط مجاهدین در ولایت هلمند و لسواری گرمسیر به قتل رسید. با تاریخی مذکور در نتیجه سرریز شدن سیلاب‌ها در ولسواری خاناباد ولایت خندوز 3 تن کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. بر اساس گزارش‌ها در هفته گذشته در بخش‌های مختلف ولایت خندوز 4 تن کشته و 7 تن دیگر مجروح شده اند. یک خبری دیگر سیلاب‌ها در شهر پلخمیری ولایت بغلان سبب زخمی شدن 5 شان گردیده است. محمد نذیر کوهزاد مسئول اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بغلان گفت که در نتیجه سرریز شدن سیلاب‌ها در بغلان نزدیک 30 منزلی مسکونی شده اند. با تاریخ مذکور مرتد عبدالجبار تقوا والی ولایت تخار برسانه های کفری گفت که در نتیجه سرازیر شدن سیلابه ها در بخش های مختلف این ولایت تن کشته و صدها جریب زمین زراعتی تخریب و ده ها از تلف شده اند با تاریخ مذکور به گفته قوای آیصاف پنشن از سربازانشان به اثر انفجار یک در جنوب افغانستان به قتل رسیده اند چهار جمادی الثانی مطابق به 26 اپریل در ولایت پکتیکا مردم دست به تظاهرات زده بر ضد معاون اول کرزه شعار میدادند علت این تظاهرات این است که مرتض فهم میخواهد که ساختمان تعلیم و تربیت این ولایت را به یکی از ولسوالی های دیگر انتقال دهد با تاریخ مذکور، اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از جان باختن بیش از 100 تن در نتیجه ها در این کشور خبر می‌دهد. مرتضى نعیم کاکر رئیس این اداره در یک نشریه خبری گفته است که این افراد در جریان سیلاب‌های جان باختن از آغاز مای حمل تاکنون در حدود 20 ولایت کشور سرروزیر شده است، به گفته وی تاکنون کنون 112 تن کشته و 27 تن ناپدید شده و حدود 40 تن دیگر نیز مجروح گردیدند. وی همچنین آن گفت که در این سیلاب‌ها بیش از 20000 خانواده شده و بیش از یک هزار خانواده دیگر بطار کامل تخریب شده اند تاجیکستان بستنوی جمادی الاول مطابق با 21 اپریل رئیس جمهور تاجیکستان میگوید که خروج نیروهای ناتو در سال 2014 میلادی از افغانستان بالای امنیتی منطقه تاثیر میگذارد. امام علی رحمانوف در سخنرانی سالانه اش به پارلمان تاجیکستان گفت کشورش یک منطقه حائل در قاچاق مواد مخدر افغانستان به روسیه و اتحادیه اروپا به حساب میرود. رود. مرتضى علی رحمانوف در مورد پیشرفت ها در افغانستان گفت نیاز است تا اداره و حکومت این کشور بیشتر تقویت شود و امنیتی تمام منطقه را به ثبات در افغانستان و و استمدانند رئیس جمهوری تاجیکستان گفت خروج نیروهای بین المللی از افغانستان وظایف آنها را دو چند میسازد عراق 27 جمادی الاول مطابق 23 اپریل در همین روز در شهر عراق 12 انفجار پی پی رخ داد که در نتیجه تان کشته و صد دیگر زخم برداشتند در میان کشته شدگان و زخمیان افراد حکومتی نیز وجود دارد تاکنون مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته است و لیکن سخنگوی نیروهای عراقی میگوید که این کار القاعده بود که ایشان میخواهند با انکارشان به ما نشان دهند که ما قادر نیستیم تا امنیتی کشور را تامین کنیم هند 27 جمادی الاول مطابق با 23 اپریل این کشور اولین بار یک بمب اتم را که اسم آن اگنیویست امتحان کرد البته قیمت این راکت 370 میلیون یورو بوده و در امتحان کامیاب گردید این راکت میتواند 5000 کیلومتر مسافره را طی کند یعنی در تمام نقاط چین و حتی در بعضی نقاط اروپا نیز می رسد بعد از این دستاورد کشور هند از جمله کشورانی شد که بمبهای اتمی دارند این کشورها عبارتا از آمریکا روس چین فرانسا و بریتانیا میباشند. قاهره یک جمعه دسانه مطابق 24 اپریل یک کمپانی فروشی در این کشور صادرات گاز را برای اسرائیل بسته نمود. این کمپانی گوید که اسرائیل بسیاری از پول گاز را نپرداخته است. این دو کشور در تجارت گاز با هم دیگر مدتی 20 سال را امضا نموده بودند. کشورهای همسایه میگویند که آمریکا این شرکت را مجبور نموده است تا قیمت گاز را به اسرائیل ارزانتر از دیگر می‌فروشد. 20 از گاز اسرائیل را همین کمپانی تامین می نماید البته گفته می شود که بعد از سقوط حسین مبارک در این کمپانی 14 مرتبه حجوم صورت گرفته است لیبیا سه جمادی مطابق به 25 اپریل بعد از سقوط حکومت قذافی و خشونت‌های این آن کشور اکنون حکومت موقت آن کشور خواهان برگزاری انتخابات در آن کشور می باشند این حکومت موقت تمام احزابی را که فکر اسلامی داشته باشند از اشتراک در انتخابات من نموده است یعنی اشان نیز خواهان قذافی دیگرند بروکسیل سی مد ساانی مطابقی 25 اپریل ناتو در آن کیور ویزارت خانه دارد البته گفته می شود که این خانه به خاطر نشص های س ر می باشد الحمدلله در این ناخیر اشخاصی پیداگردیدند که از طریق سایت های اینترنتی به امیر ایشان نموده به شان مزاحمت ایجاد میکن حتی این قضیه به ایشان توری که روزانه به ایشان سیهجوم از طریق اینترنت وارد میگردد که ایشان اوکنون در تشویش قرار دارند که ممکن معلومات مهم از ایشان بیرون رفته باشد. نائجیریا سه جمادیوسانی مطابق 25 اپریل در این کشور جماعت اسلامی بکوهرام به سرپرستی ابو بکر شیکو عملیاتی پی در پی را براه می اندازند در همین حال رئیس جمهوری آن کشور از این قضیه در هراس آمده. در یک سفری که آلمان آلمانداش با رئیس جمهوری آن کشور ملاقات نبود، در این ملاقات وی از رئیس جمهوری آلمان خواست تا به ایشان کمک صورت گیرد. ولی رئیس جمهوری آلمان گفت تو بر کشورت برگرد و من با مقامات کشوری خود در این مورد صحبت خواهم کرد. سوریا در بین 14 کشوری که گروه دوستانی سوریا را تشکیل می دهند، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، عربستان سعودی، ترکیه و قطر نیست شاملند. افریقا چهار جمادیستانی مطابق به 26 اپریل، یک محکمه بین المللی رهبر سابق لیبریا چالرز تیلر را گناهگار و مسئول جنایت جنگ در سیلریون خان تلری چهار ساله اولین رئیس دولت در یک کشور آفریقایی باشد که توسط محکمه بین‌المللی رسمن مجرم شناخته می شود و بلاخره قرار است امروز ششمین نشست سه جانبه میان افغانستان، ایالات متحده آمریکا و پاکستان در اسلام‌آباد دایر گردد مرتض جانان موسوی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بر های های گفت در این نشست روی اقدامات عملی پاکستان در ارتباط با پروسه صلح افغانستان بحث و گفتگو خواهد شد پایان اخبار نستع... شنوندگان عزیز این بود داشته های برنامه امروزی تا برنامه دیگر شما را به خداوند منان می سپاریم جمعه خوشی داشته باشید والسلام علیکم و رحمت الله و برکات. وأطلب مسمعي زر صاصر الشاش أبي زمجر وأطلب مسمعي زر صاصر الشاش أبي زمجر وأطلب مسمعي زر صاصر الشاش أبي وتكان لا تفرح فقد جئنا بجيش أحمدين يفون للموت كما تهفون شرب الخمرتين وتكان لا تفرح فقد جئنا بجيش احمدي يفون للموت كما ما تفون شرب الخمره لنيل شهاده في ساح اقصان الابي لنيل شهاده في ساح اقصان الأبي. واطلب مسمعي زرجاص رشاش ابي زمجر واطلب مسمعي زرجاص رشاش أبي زمجر واطلب مسمعي زرجاص رشاش أبي زمجر واطلب مسمعي زرجاص رشاش الأبي زمجر واطرب مسمعي يا رصاص رشاش ابي زمجر واطرب مسمعي يا رصاص رشاش ابي امضي بنجل شابه لا تخشى باغوتا شقي وامضي منين شهادة لا تخشى طاغوتا شقي واهتف بها مترنما الله أكبر مقصدي هيا بنا كي نستعيد قدسا جريحا قد سبي واهتف بها مترنما الله أكبر مقصدي هيا بنا كي نستعيد قدسا جريحا قد سبي أتكل اليهود عرض نادس وكرامة مسجد و تعرضوا لنبينا جمع النصارى الحاقدين. وأضرب مسمعي زرصاصر الشاش أبي زمجر وأضرب مسمعي زرصاصر الشاش أبي زمجر وأضرب مسمعي زرصاصر الشاش أبي زمجر. وأطلب مسمعي في الشاش الرشاش الأبيتي كانوا لا تفرح فقط جئنا بجيش أحمدي يكون <تصفيق> للموت كما تهفون شرب الخمرة فتكان لا تفرح فقد جئنا بجيش أحمد يكون للموت كما تهفون شرب الخمرة آهل لنيل شهادة في ساح أقصان الأبي آهل لنيل شهادة في ساح أقصان الأبي زمجل وأطلب مسمعي زر الشاش أبي زمجر واطر مسمعي يرنص رشاش الشاش زمجر واطر مسمعي يرنص الشاش ابي زمجر ريثا الظبا